شراب بیغش و ساغی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند من چه عاشقم و رند و مست و نام سیاه هزار شکل که یاران شهر بیگونه هند جفا نپیش درویشی از دراخ روی بیار باده که این سالکان نمرد رهند مبین حقیر گدایان عشق را که این قوم شهان بی و خسروان بی به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن تاعت به نیم جوننه هند مکن که کوکبه دلبری شکسته شود چو بندگان به و چاکران به جهند غلام هممت دردی یک رنگم نان گروه که از رق لباس و دل سیاه هم قدم منه به خرابات جز به شرط ادب که سالکان درش محرمان پادشه هم جناب عشق بلنده هست هممتی حافظ که آشغان ره بی همتان به خود ندهند.